قدرت تلاش های مرکب شده در کتاب فوقلاده جیم کالینز به نام از خوب به عالی داستانی وجود دارد که به زیبایی توصیف می کند که برتری خفیف در اغلب اوقات نامشهود است و ناچیز به نظر می رسد. البته تا زمانی که به سرعت گریز برسد بگذارید بخشهایی از این کتاب را با هم مرور کنیم یک چرخ تیار بسیار بزرگ و سنگین را در نظر بگیرید یک دیسک فلزی سنگین که بر روی یک مهور سوار شده است و در حدود 9 متر قطر، زخامت سانتی متر ضخامت و 2300 کیلوگرم وزن دارد. حالا تصور کنید وظیفه شما این است که این چرخ تایار را با بیشترین سرعت ممکن و به مدت طولانی دور مهورش بچرخانید. اگر با تمام توان آن را هل دهید، ممکن است بتوانید آن را چند سانتی متر بچرخانید که تقریبا ناچیز و نامشود است. اگر همین طور به هل دادن ادامه دهید، بعد از دو یا سه ساعت تلاش مداوم می توانید چرخ تیار را یک دور کامل بچرخانید. اگر همین طور به هل دادن ادامه دهید چرخ تیار با سرعت کمی بیشتر شروع به چرخش میکند و می توانید با تلاش زیاد و پیوسته برای بار دوم آن را بچرخانید. شما به هل دادن آن در یک جهت ثابت ادامه میدهید دهید: 3 دور، چهار پنج شش سرعت چرخ طیار افزایش مییابد هفت هشت به حل دادن ادامه میدهید نه ده چرخ طیار شتاب میگیرد یازده دوازده و با هر دور چرخش سرعتش بیشتر میشود بیست سی پنجاه صد سپس در یک لحظه اتفاق غیرمنتظرهای رخ میدهد تکانش آن چرخ تیار به نفع شما عمل می کند و دور پس از دور چرخ تیار را به پیش میراند. وای خود آن وزنه سنگین برای شما کار می کند. شما آن را بسیار آسانتر از چرخش اول حول می دهید. اما چرخ تیار سریتر و سریتر می چرخت. هر چرخش چرخ تیار کاری بیشتر از آنچه قبلا انجام شده است انجام می دهد و تلاش های شده تان را مرکب می کند. هزار بار سریعتر، بعد ده هزار بار و سپس صد هزار بار. آن دیسک سنگین و بزرگ با تکانشی تقریبا توقف ناپذیر میچرخد. حالا فرض کنید، شخصی نزدیک بیاید و بپرسد کدام نیروی بزرگ بود که موجب چرخش چرخ تیار با این سرعت بالا شد. شما نمی توانید به این سوال پاسخ بدهید. این سوال چرند و است، اولین هل بود؟ یا دومی؟ یا پنجمی؟ یا صدمی نه. همه ی آنها بودند که با هم جمع شدند. مجموعی از تلاش در یک جهت ثابت بود که این چرخش سریع را به وجود آورد. بعضی از هلها ممکن است از برخی دیگر بزرگتر و قویتر بوده باشند اما هر کدام از آنها بدون توجه به اندازشان منعکس کننده ی بخش کوچکی از نیروی کلی وارد بر چرخ تیار هستند این هم بخشی از کتاب جیم کالینز افراد موفق برای انجام دادن کارهایشان هر کاری که لازم باشد انجام می دهند. چه انجام دادنش را دوست داشته باشند چه دوست نداشته باشند آنها می‌دانند که هیچ کدام از آن هلدادن‌ها نیست که آن تکانش بزرگ را به وجود می‌آورد بلکه مجموع آن هلدادن‌های پیوسته است که سرانجام آن تکانش بسیار شگفتانگیز را در زندگیشان پدید می‌آورد افراد موفق به جای عادت‌هایی که به شکستشان کمک می‌کنند عادتهایی را پرورش می‌دهند که به موفقیتشان کمک می‌کنند آنها انتخاب می‌کنند که برتری خفیف در خدمتشان باشد نه علیهشان آنها به جای اینکه زندگیشان را صرف ساختن رؤیاهای دیگران کنند رؤیاهای خودشان را می سازند. آنها از طریق انتخابهایی که خیلی جزئی و نامشهود هستند به این نتایج چشمگیر دست پیدا می کنند انتخابهایی پیش پا افتاده، ساده و ظاهرا ناچیز هر تصمیمی که میگیرید یک تصمیم برتری خفیف است هر کاری که قصد انجام دادنش را دارید، اینکه چگونه عمل می کنید، چه چیزهایی مطالعه می کنید، با چه کسانی صحبت می کنید، برای نهار چه چیزی می خورید، با چه کسی شراکت می کنید، چگونه با زیردستانتان رفتار می کنید و امروز قصد دارید، چه کاری را به اتمام برسانید، همه اینها تصمیمات برتری خفیف هستند. خیلی ساده و با گرفتن این تصمیمات درست به صورت یکی یکی و به کررات قدرت شگفتانگیز برتری خفیف را به خدمت خود در می آورید. موقعیت ناخواسته نتایج بدی که در گذشته گرفته اید و شواهد و آثار شکست در زندگیتان همگی ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشند. ممکن است در انتهای تونل نوری نباشد یا حداقل امروز نتوانید آن را ببینید. اما با یاری گرفتن از زمان، نیروی برتری خفیف را به جانب خودتان می آورید و موفقیتتان اجتناب ناپذیر می شود. فقط لازم است به اندازه کافی در این فرایند باقی بمانید تا به آن فرصت پیروزی بدهید و این فقط با یک انتخاب شروع می شود. بردباری در پرورش و نگهداری برای کسانی که برتری خفیف را درک نمی کنند صبر و شکیبایی مسئله جدی است. مسیر موفقیت اغلب در ابتدا ممکن است ناخوشایند و نامساعد و حتی ترسناک باشد خصوصا اگر تنها کسی باشید که در آن مسیر قرار دارد و با توجه به این حقیقت که از هر 20 نفر فقط یک نفر به هدفش میرسد کاملا محتمل است که شما تنها کسی باشید که در این مسیر قرار دارد حداقل اقل برای مدتی کوتاه گاهی اوقات مسیر موفقیت سخت و دردسر است برای خیلی از مردم راحت تر است که در رختخوابشان بمانند قرار گرفتن در مسیر و ماندن در آن نیازمند ایمان داشتن به فرایند است خصوصا در همان ابتدا این ویژگی شما را به فردی پیشگام تبدیل می کند افراد پیشگام نمی دانند در ادامه مسیر چه خبر است، اما به هر طریق ممکن پیش می روند. به همین دلیل است که پیشگام بودن به شهامت زیادی نیاز دارد. شهامت به معنی داشتن هدف و جرأت است. وقتی که برتری خفیف را درک کردید و پی بردید که چگونه از آن استفاده کنید، به طور طبیعی هر دو را خواهید داشت، هم هدف و هم جرأت برای ماندن در مسیر رسیدن به آن هدف. نکته مهم این است که این مسیر را آغاز کنید و به یاد داشته باشید که مهم نیست پیش از این چه اتفاقاتی رخ داده است. هر وقت که بخواهید، می توانید از نو شروع کنید. چقدر طول می کشد؟ چقدر طول می کشد تا نتایج را ببینید و حس کنید؟ چقدر طول می کشد تا موفقیتی را که به دنبالش هستید، تجربه کنید؟ بدیهی است که برای همه ما غیرممکن است که دقیقاً بگوییم چقدر زمان میبرد. اما با توجه به تجربه خودم در طی سه تا پنج سال می توانید واقعاً هر چیزی را در زندگیتان به مسیر درستش برگردانید به کاری فکر کنید که سه سال پیش انجام میدادید انگار همین دیروز بود اینطور نیست خب سه سال بعد کارهایی که همین حالا انجام می‌دهید نیز مثل دیروز به نظر می‌رسند با این حال این دوره کوتاه زمانی می‌تواند زندگیتان را متحول و دگرگون کند چقدر طول می‌کشد احتمالاً بیش از چیزی که شما می‌خواهید اما وقتی که زمانش فرا می رسد متحیر می‌شوید که چقدر سری بوده است شکیبایی مشکلی برای سنبل آبی نیست خیلی ساده به کار خودش مشغول می شود و آرام و آهسته دو برابر می شود تا هنگامی که سطح آبگیر را کاملا می پوشاند. شما هم می توانید همین کار را انجام دهید. سرین، من دست به سینه و چشم براهم. از باد و باران و طوفان پروایی ندارم. من دیگر از این روزگار و سرنوشت شکایتی ندارم. زنهار که خود من به سویم می آید. جان جانباروز چشم براه برتری خفیف تضمین کند که خود واقعی شما به سویتان میآید. درست همانند سنبل آبی که سطح آبگیر را پوشاند، اینکه خود واقعیتان چگونه نمایان میشود خوب یا بد، شکست یا موفقیت و برد یا باخت، لحظه به لحظه به خود شما بستگی دارد. لازم نیست نگران باد و باران و طوفان باشید اما باید مواظب آن اقدامات کوچک ساده ای باشید که در طول زمان مرکب میشوند و موجب موفقیت یا شکست شما خواهند شد مشکل اینجاست که بسیاری از ما اینگونه زندگی می کنیم که یک پایمان محکم در گذشته است و دیگری با تردید در آینده و هرگز در همین لحظه زندگی نمی کنیم ما در مورد هر چیزی فرزندان، سلامتی، خانواده و شغل درگیر افسوس همیشگی و نسایح تاریخ گذشته درباره اتفاقات گذشته و نگرانی استراب و ترس درباره حوادث آینده هستیم. برتری خفیف تماما درباره زندگی در لحظه است. برای من شاید این سختترین درسی بود که درباره برتری خفیف یاد گرفتم. شما نمی توانید آن را در گذشته یا آینده پیدا کنید بلکه فقط همین جا و همین حال است. دلیل اینکه در سال 1997 کتاب اکهارتول به نام نیروی حال بازار را همچون طوفانی در نوردید و بیش از 5 میلیون نسخه و به سیسه سی زبان مختلف فروخته شد، این است که پیام اصلی او چیزی بود که همه میدانند لازم است بشنوند. زندگی شما فقط در همین لحظه است. اما شما نمی توانید فقط با خواندن یک کتاب این حقیقت را درک کنید و با آن زندگی کنید. شما با درگیر بودن تمام و کمال در فرایند زندگی این حقیقت را کاملا درک می کنید و به کار می گیرید. نه با افسوس گذشته، نه با وحشت از آینده. کتاب برتری خفیف درباره آگاهی و هوشیاری شماست. در این باره است که از همین حالا و برای باقی عمرتان انتخاب‌های درست انجام دهید، انتخاب‌هایی که به نفع شما عمل می‌کنند و شما را توانمند می‌سازند. چیزی که به شکیبایی شما کمک می‌کند و شما را در مسیر درست نگه می‌دارد، فلسفه است که شامل درک راز زمان است. به یاد داشته باشید که فلسفه شما در حقیقت دیدگاه شما درباره مسائل است. با دانستن و درک راز زمان به خودتان می گویید اگر به اندازه کافی در این مسیر بمانم به نتایجی که در جستجویش هستم دست می آبم. این موضوع درباره حال و حوصله یا احساسات شما نیست درباره نیروی اراده هم نیست، کاملا درباره آگاه بودن است. وقتی وارد اتاق تاریک میشوید چرا دستتان به سمت کلید برق میرود؟ زیرا میدانید وقتی که کلید را بفشارید لامپ روشن میشود. شما مجبور نیستید درباره فشردن آن کلید برق با خودتان گفتگوی درونی انگیزشی انجام دهید یا درباره اینکه آیا باید آن کلید را بفشارید یا نه یک سیستم پاداش و جزا برای خودتان درست کنید به هیچ حرف و حدیثی نیاز نیست فقط کلید را میفشارید. چرا زیرا میدانید چه اتفاقی رخ خواهد داد. میدانید. این موضوع دقیقا مشابه همان است که هر روز کمی پیاده روی می کنید. کمی وزن می زنید کمی بهتر غذا می خورید و کمی پسنداز می کنید. کلید برق را می فشارید. زیرا میدانید که این کار شما را سالمتر و ثروتمندتر می کند. لامپ روشن می شود. این دقیقا همان است. بدون هیچ تفاوتی، به جز در یک چیز و آن چیز زمان است. نحوه دستیابی به غیر ممکنها در سال 1922، فریتیوف نانسن، کاشف نروژی برای خلق رکورد شگفتانگیزی در شجاعت برنده جایزه صلح نوبل شد. او بعد از جنگ جهانی اول به تنهایی بیش از 400 هزار زندانی جنگ را آزاد کرد و کمک کرد تا میلیون ها روسی از قحطی و گرسنگی نجات پیدا کنند. نانسن درباره ی چونین چنین می‌گوید: سخت چیزی است که کمی زمان می برد. غیرممکن چیزی است که کمی زمان بیشتری می خواهد. نانسن کسی بود که برتری خفیف را به چنگ آورد و هسته اصلی آن را درک کرد. این یک شیوه خارق‌العاده برای بیان آن است. غیر ممکن فقط کمی زمان بیشتری می خواهد. بخشی از جمله نانسن که من خیلی دوستش دارم این است. کمی. زیرا در زندگی ما برخلاف مثال گراند کنیون، تغییرات چشمگیر آنقدرها هم طول نمی کشد. بله موفقیت زمانبر است زمانی بیشتر از آنچه بسیاری از مردم مایل به صبر کردن هستند اما نه آنقدری که گمان میکنید و انگامی که تکانش برتری خفیف شروع به اثرگذاری میکند غیر قابل توقف میشوید و به نقطه‌ای میرسید که نتایج با سرعت زیادی شروع به رخ دادن میکنند اجازه دهید برایتان مثالی بزنم باز هم از یک تجربه کسب و کار فصل قبل درباره ادغام نیروی فروش شبکه مردم و آن شرکت بزرگتر صحبت کردم. حالا اجازه دهید باقی ماجرا را تعریف کنم. بعد از چندین سال همکاری موفقیت آمیز با آن شرکت، به ای رسیدم که می‌خواستم کار بزرگتری انجام دهم. من مشتاق و تشنه چالش بودم، چیزی که با آن بتوانم رشد و پیشرفت کنم و تغییر مثبتی در جهان ایجاد کنم. بنابراین کاری را انجام دادم که خیلی از مردم ممکن است آن را احمقانه بدانند. من آن کسب و کار موفق را رها کردم و به تنهایی یک شرکت بازاریابی جدید به آن هم در صنعتی که راه اندازی یک کسب و کار جدید و شکست خوردن در آن خیلی آسان بود، اما سر نگهداشتن نگه داشتن آن کار راحتی نبود. یک نیروی فروش مستقل شبیهی یک ارتش داوطلبانه است. شما آنها را استخدام نمی کنید بلکه باید داوطلبانه به شما ملحق شوند و داوطلبانه با شما بمانند که یعنی شما مجبورید کارهای زیادی انجام دهید و همه آن کارها را خوب و شایسته انجام دهید. زیرا اگر آنها راضی و شادمان نباشند خیلی سری شما را ترک می کنند. مثلا اگر نیروهای شما در مدت شش ماه فروش را دو برابر کنند، باید کاملا آمادگی داشته باشید تا از آن فروش پشتیبانی کنید. شما نمی برای تحویل یک سفارش یا یک چک پاداش حتی یک روز تاخیر داشته باشید. خبر آن همه جا می پیشد و آنها شروع به ترک کردن شما می کنند. اما اگر در آن شش ماه فروش اصلا رشدی نداشته باشد باید برای آن نیز آماده باشید و بتوانید محکم سر جایتان بایستید بدون اینکه موجودی فروخته نشده سرمایه شما را ببلعد بگذارید اینگونه بگویم راه چنین شرکتی مناسب افراد نازک نارنجی و حساس نیست معمولا برای شیرجه نخست و رساندن فوری شرکت جدیدتان به سود و شهرت استراتژی رایج این است که شرکت جدیدتان را با بزرگترین هیاهوی ممکن به راه بیاندازید مثلا با یک افتتاحیه عمومی و با شکوه با سر و صدای زیاد، تبلیغات عمده در مورد اشخاص بزرگی که دعوت کرده اید، یک یا دو تاییدیه از سوی افراد مشهور و غیره توجه عموم را جلب کنید و سرها را به سوی خودتان بچرخانید. هر کاری که لازم است انجام دهید تا توجه افراد بیشتری را جلب کنید. از این رو ما تصمیم گرفتیم که دقیقا عکس این کار را انجام دهیم. میخواستیم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. اگر شرکت را با استفاده از برتری خفیف به شیوهی کاملا معمولی راهاندازی کنیم ما زمان و منابع چشمگیری را برای ایجاد بازاریابی، پشتیبانی و سایر زیربناهای سازمان صرف کردیم قبل از اینکه شرکت رسماً شروع به کار کند مطمئن بودیم که شرکت مستحکمی بنا کرده ایم. سپس بعد از انجام دادن همه کارهای اولیه یک روز تعدادی از دوستان و افراد خانواده من را به آنجا دعوت کردیم و کسب و کارمان را افتتاح کردیم ما این نکته مهم را به نیروهای فروشمان یاد دادیم که کسب و کارشان را به همین صورت ایجاد کنند آهسته اما پیوسته قبل از آغاز به کار شرکت، ما اصول برتری خفیف را به صورت مجموعه ای از نکته ساده مدون کردیم که به آنها ده ارزش اصلی می گفتیم. این ارزش‌ها شامل چیزهایی مانند واقع بودن، مصمم بودن، پیگیری دائمی بهبود شخصی و داشتن رؤیاهای بزرگ بود و هر روز بر اساس آنها عمل می‌کردیم. در میان آن ده ارزش اصلی، ارزش مهمتر این بود. آهسته تر رفتن برای سریعتر رسیدن. به عبارت دیگر اگر به دنبال نتایج بزرگ هستید کارهای کوچک را درست انجام دهید. فقط آنها را به طور پیوسته و مداوم انجام دهید. ما مدل کسب و کارمان را روی اصول برتری خفیف بنا کردیم. از همان روز اول از آن اصول پیروی کردیم و آنها را به هر کسی که در گیر کار بود آموزش دادیم. فروش به صورت پیوسته و یک نواخت رشد کرد. ماه به ماه و بدون هیچ جهش کوانتومی تا هنگامی که اثر مرکب تمامی آن رشد های پایدار شروع به اثرگذاری کرد سال اول به فروشی بالای 100 میلیون دلار رسیدیم مهمتر اینکه در تاریخ آن صنعت ما سریعتر از هر شرکت دیگری به آن ارقام فروش رسیدیم در حقیقت به دلیل اینکه در شاخه خودمان اولین شرکتی بودیم که به این مهم رسیدیم از طرف مجله بازرگانی صنعت جایزه گرفتیم ما در کوتاهترین زمانی که قبلاً کسی توانسته بود به شرکتی قول پیکر تبدیل شدیم. چطور؟ با آهسته رفتن. گاهی اوقات برای سریعتر رسیدن لازم است آهسته تر حرکت کنید. داستانهای شخصی از خوانندگان کتاب جیم هاگمن، دالاس، ایالت تگزاس. از نظر من برتری خفیف نوعی سبک زندگیه، یه شیوه زندگی که خصوصا امروز و در این جهان خوشنودی آنی خیلی‌ها بهش پی نمی‌برن. کتاب برتری خفیف درباره انجام دادن کارهای کلیدیه که هم انجام دادنشون آسونه و هم انجام ندادنشون خوندن و به کاربستن بستن روزانه مطالب این کتاب به من کمک کرد تا بیش از 30 کیلوگرم از وزنم او طی 24 ماه کاهش بدم با افراد بسیار موفقی ارتباط برقرار کنم که حالا مربیای من هستند روز به روز اعتماد به نفسم افزایش دادم و خیلی چیزایی دیگه مهمتر از همه اینها کتاب برتری خفیف به من کمک کرد تا درک کنم گذاری روزانه فقط چند دقیقه برای بهبود زندگیم اثری مرکب داره حالا هر روز با دونستن این موضوع از خواب بیدار میشم که من در مسیر رو به ترقی برای دستیابی به اهداف رویاییم در زندگی هستم مارک نویسنده الفی پات، دانش آموز کارآفرین سالها بود که میخواستم رئیس خودم باشم و هنگامی که این موقعیت به وجود اومد اولین کسب و کارممو شروع کردم. متاسفانه بعد چند سال تو کارم شکست خوردم و همه چیزم رو از دست دادم یه تجربه تلخ و دل سرد کننده بود بعدش تصمیم گرفتم از مسئولیت دوری کنم مدتی بعد اون اتفاق نسخه ای از کتاب برتری خفیف و هدیه گرفتم و چشمام باز شد فهمیدم با اینکه گویی کسب و کارم رو یه شبه از دست داده بودم اما حقیقت چیز دیگه بود من مدتی طولانی برتری خفیف و در جهت محکوس به کار گرفته بودم و اون چی که حالا میدیدم آثار مخرب انباشته شده در تمام اون سالا بود از این خوشحالم که از اون وقت تا الان در حال به کار بستن اصول برتری خفیف تو مسیری سازنده هستم و هر چند مدتی طول کشید اما حالا اوضاع در مسیر خیلی مثبتی پیش میره من همسری زیبا و خانواده‌ای دوست داشتنی دارم و به تازگی اولین کتابم منتشر کردم آیندهی خانواده ما بسیار درخشان به نظر میرسه و من از اعماق قلبم میدونم که این موضوع به دلیل کاربرد مداوم برتری خفیفه. جرمیتی، ماریزویل، ایالت واشینگتن. تو 24 سالگی من بلند پرواز ولی یکم ناامید بودم. اون موقع باشگاه ورزشی خودم هم داشتم ولی با سرعتی کمتر از حد انتظارم به سوی موفقیت حرکت میکردم. وقتی کتاب برتری خفیف و خوندم، فهمیدم که موفقیت آهسته و پیوسته است و در نتیجه ثابت قدم موندن در طول زمان به دست میاد. لازم بود داشته و بازنگری کنم، گامای دقیقی که برای موفقیت لازمه رو درک کنم، بعد اون گاما را به طور پیوسته عملی کنم. دو سال بعد شروع این کار، درآمد من چهار برابر شده بود. از اون موقع تا الان من دو تا باشگاه دیگه افتتاح کردم یه شرکت رسانه ای آنلاین رو اندازی کردم تازه به دنبال اینم هستم که یه بار دیگه درآمد اونو چهار برابرم بکنیم کتاب برتری خفیف منو دوچاری تغییر اساسی کرد من ایمان دارم که عادتهای روزانهم باعث موفقیت و شکست میشن این انتخابم تازه به خودم بستگی داره به عادتهای روزانهتون توجه کنین نتیجه‌اش رو نکات مهم زمان نیرویی است که اقدامات ساده روزانه را به موفقیتی بزرگ تبدیل می‌کند. یک روال طبیعی برای موفقیت وجود دارد. کاشت، داشت، برداشت. گام مرکزی یعنی داشت، فقط با گذر زمان به وقومی پیوندد. موفقیت‌های حقیقی زندگی آنی نیستند. زندگی یک لینک کلیکی نیست. برای درک اینکه برتری خفیف چگونه عمل می کند باید اقداماتتان را با چشم بسیرت ببینید. سخت کمی زمان می برد غیر ممکن فقط کمی زمان بیشتری می خواهد